با برد دور گرش حال حال شایی که به همسای گدایی دارد عشق خونین بنمودن به طبیبان گفتند درد عشق است و جگرسوز دبای به تم از قنز آموز که در مذهب عشق هر عمل و و هر در جزای نا گفتم بوت و چه باد پرش شادی روی کسی خور که صفای تو سو حافظ درگاه نشین فاضه خان و زبان تو تمنای دعای حسن که در مطور دهش حجاب ساز و نبایی دارد نقشه هر زخمه زخم یعنی زربه الان هم به همین معنی برای ساز بخواهیم به اینکه زخمه کنید هر یکونه زرزهی که به ساز میزنند میگم زخم و راه هم اصطلاحات مستید در این حال که اینجا راه میگه راه بجایی دارد یعنی به یک رایی رایی به طرف دیگه یعنی هر زرجایی بود راه بیبرد جای جایی منتقی این حال راه معنی آهنگی نطر واپرده بگردان بزن راه حجاز از این راه شد بگرد یا هر حال و و نسخه لام به اشتباه یا نه لام که نسخه من اون نوشته زحمه نه بله یه جای هم بازداره لام لام و هر حال و یک نسخه هم سه و اتار هفت ناس هستید ناس و شهر پرده پرده هم اصلاح موسیقی و و بیستر آسان هم زرخ میدارد که که قدید بهش عجب داد و دارد، نه چه زخم که چون راه به دارد، آلم از ناره اشتا مواد آفاکی، اونو به که که خوش آهنگ و پرخ بخش تدا، تدا، تدا، بازیش دیش واک اونیست که در کلمه آواز، آوا و نوا و واژه به معنی دوغن هست. هش یعنی جت صدا، اکو، اجواج. در عربی هم صداس و صدایست. حافظ صدا رو خیلی زیاد به کار بودونید. می‌رسیم. از صداقی سفنهش، من دیدم خوش کرد. جادگاهی می‌دنید در باید. دارگاه هایی زیرگوان بدونه بود، که نیست، صدا هست یعنی انحکاس توبه هست این هم هو. آدم از ناله اشتاق عباده که خوش آهنگ و فره یعنی انحکاس ناله اشتاق، خوش و اینه که هرچی ازش گفته بشه، و دلپسند عشق نبود اینجا عشق نبودی چندین تخانه نه چه گفتیم؟ یه این این عشق نبود اینجا قمع عشق نبود اینجا من تصفیل کرد در که از این در خیلیست خیلیست حالا از ناله ارشاق هم واضحالیی که خوش رو و فرفر تدایید درست همونید دیر دردین کشم ها گر چه ندارد دوردی اون ته شرابید بسمت که پلوید ایش ایمانه و عرض کردن و است و وزنه و بعد هم دردید دردی, دردی. دردی کشم میخانه بود کسانی بودن که دیگه جر... نوانایی بردن شواب صافی رو نداشتن و سه های خون رو میکرد در آسان ها بسیار آمدن مثلا یه شیف بلسلامی تدیبی کنرد شیف همدرم موقع داشتی شم نشسته بود به با دوستان به قلبت می و اون فارضیت می کنید شده بود و هستن و گشتن و برس می و عربده می کردن منسا و و شراب و دورده دورده اون گفت با لامت خنجه سال احرام رو چون با وسایی چیز تمیز این کنیم در کتاب بدای از دقایه خانده هم و یه جایی یکیسی خیلی اون بود ولی در خانده هم سه مونتاران بود یکیسی دیگه هم پیر دور کشم ها تو زر ندرو که زرداشی که ثروت نمی خورد گرچه ندارد زر و عوض خوش عطا و نتاف که مگس است اولا مگس این که مگس بهین زنگور رو هم به گند مگس نه نه یعنی اصلا از مگست که من مگس از شیرنی خوشش میاد حالا محافظ اینقدر حساسی سعدی به خد از دست مگس خواهد ازن حساب که این در غزرستان که میدینی مگستان ها تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در هم کش مگس جای نخواهد از تو خانه تا را جان شیرین در پنه گردان گردد که هدوان کن جوری از مگست نسرد؟ بل چون در بله که مگس زحمتم از تا ارجای نسبا که در کنگره آبستندهی که در شیراز شروع تازه دانشیار شدند استادای عالمان که کنگره کنگرهی نشکند کنگره در شیراز اوبیوهش بر بعضی از همه اون این بازیام نمی دن هر با هر که موضوع قطعهاش بوشته اون سهدی و مگرد اینقدر، اینقدر شیخ با همچی همساسو خیلی این شما گفت خیلی و... بله، <تصفح> نا باشی به بعضیش نمیمده، نه، که هم اسلامیت بودن، ما در ایران واسه خارج می‌شونم از در ایران واسه سگ، ایوان تصمدیده بوده و ایوان محسوس و منحسوس گربه بوده، گربه در مراسوم که هم دفت اینا واید و این تابو شدن سگ از یهود و عرب اینا. باز هم اون احوال اسلام با همه ی که این سال گفت دشمنی <تصفح> وعنی... ولی تنها س تنها چیز که قابل خرید رو نجاست قابل خرید رو یعنی شیشه عرب اصلا قابل ملکییت نیست که قابل خرید بودی. هر چیز نجسی همینطور ولی سنگ کن که نجسه سنگ گله، سنگ شکار، سنگ و قیمت می داره میگن معلم یعنی سنگ آموکه، سنگ تحریقی آنگ. سنگ شکاری جاده هر حیبونی رو رو فقط میشه وقتی یعنی رو بگرده، بخوابنن، بسم الله هم بگن، سرش نبید. تنها استثناش. اگر در شکار سک به یه عیونی زیر درمون سکی این عیون بمیره. آبه سک دهم زنه بار باید با خاک شد. زیر درمون بمیره، میشه شلانه. مور قابل که در هم میره و میاره اگه چیزی در نوزنگ مور، حاله اینا رو یاد یا, یا اینا. اینا رو اسلام شاید شاید. قبول کرده این مداری این ایران رو هم از اون طرف هم از این طرف کرده تو، از کنم که محترم داب دلم که این مگست غنفرست مگست طبعاً نازمی تا, تا هواگیر تو شد. هوای تو پرکار شد. قرض همایت، هما مربزه شد هست. این که از شایفه مرهان مردار خواهد. یعنی مرهان زوجود هم و شقارش هم دو جورن و شقارش هم دو جورن زنده قار و مرده مورمان و مرده زنده قار ماستر که پنجه شون خیلی قویه و میتونن سید بوت کیو بکشن. اربانی که نه اونبال مرده می‌گردن پنجهاشون ضعیفه اینا هستن از هستن که دانخارا از چونچش در این مرب، یعنی گنجش یعنی تو چیز که هست گنجیش، که بسیار بزرگه، مربان شکاری هم هم از مربی که گنجیش رو سید می که باشه بهش می کنید هست تا اقام که برگرد بود و مربان شکاری هم هم نمی شکاری، باز و چاهین اینا مربانی هستند که کپ کنگیره یا اول چیزا می‌تونه بگیره و در هما و و یعنی این مردارکاره‌اشون هم همه همه یک مردیز و اندازه‌ی بازوشاهین یعنی از کبوکر به دکتر ولی این و چیزم نیست، خیلی کم دیده می‌شه تصویرش رو دارم اینجا نیست البته یک چیزم بگیم اینجا در کتاب پرندگان ایران حضیر رنگی از اشتنگی کدن اونان می‌کنم بود که خدا رسش آقای مهندسی اسکندر از خیلی خدمت کرد این کار فرندگیزی و زحمت کشم و یکی از کاری که که همین انتشار این کتاب می‌کنند اونجا رو شکست شدار می‌داره که برای ما که کار عدف تالیب کنیم و نمیدونیم فقط، فقط چنیدیم که سایه دوبت بر سر می سایه همه ها کسی می اندازه، سایه بوم بر همه جهان شود محضون و همه هم خود، شکل همه اما فر و فره ایزتی موحث بیار مفصلید که فیلن من مجموعه نمی بگم یه لیلشین که وقت بسیار میگنه دو خون این که یک بار تفصیل هم چه تمام در این سر کلاس ساهنامه سن گفتم یک بارم یک بار نوستی دو سه بارم سر کلاس های روزه تانشه در سر ساهنامه گفتم دیگه شدن بودشون پشتنچه هست جهت موزه هستم این که میاد دو بودش از در اینکه به طور گلی زدی رو این طور کلو چشم کنم مجرسن کنید آره این که دور سر امام‌ها و اینا نقش می‌کنند و حتی مسیح‌ی‌ها معتقلند یکی رو می‌گرد و سر عزوز مریم و امان‌ها بکنید اوز و هر حال فرق رئیدتی یعنی تأیید الهی. تخصوصی رو به کسی یا پیغمبری که مگر اینکه مورد تحیید ذات و اگر راهی از اون گرفته بشه از اون منصف میادم خواهد شده از بردش فراز شد هوای تو در پرواز آمده فر همات قاروره قاروره یعنی اصلا این شیشه بقیه که از عدب بود که بگن شاش مریض میورید اون شیشه شمیورید شی اینه که این عشقم بیگه من به تحریب نشون دادن که ببینه که چیه عشقم هستونیم شده و تشریف شد در به عشق هست و دواشم دوهای دیگر این هم اشبگر یکی فرین باشه فرین ولی خمزه تو از خمزه مای از که در از مسلمهش هر عمل و نه از گفتن بسه ترسا و چه تو به چه شده هست بودن چون واقعا در که سالهای زندگی مردی به مینمگرسی نه گفتن بسید نه و چه بسید بسید شادی روی خود که سفایی ترسا از مصدر ترسیدن همجور که دانا و بینا و شنبا از این حرفا داریم استفت فاعلی از مستر ترسیدن قایدتاً با علم فایلی باید بشید ترسا ترسیدن ترس به لهم که در اصطلاح علمیش میگن ریشه فل. ترس ترسا یعنی ترسندی یه <تصفح> ترسی؟ نه نه <تصفح> نه اون علق مال وقتیست که کسی چیزی رو چست بکنه مثل گانا مثل <تصفح> <مرحب> بینا بینا مراد کسی نیست که چشمش می‌بینه. مراد آدمی هست که دینشی به دست بوده هره ترسا؟ بس. بله، نه خیلی، کنم که کلمه عربی داریم برای یکی های دین مسیح راهیم راهیم جمعش هم میشه روحبان هر در فارسی، در شعر فارسی و در نصر فارسی همتا زیاد حتی در انوالات رسول اکرم نوشتن که یه راهبی به نام بحیرای راهب اول بار نوبت نبوت و کسر رسول اکرم دید و مژده داد که ایشون پیغمه راهب ترجمه تحت لفظی فارسیش خوشه ترسان داره که در عربی هم راهب یعنی ترسی راهب یعنی خدا ترس راهب عربی رو ترجمه کردن به پرسا به معنی کشیش. معنی پرسا بچه یعنی بچه بچه ارمانی نه گفتن بطه بطه هم به معنی زیبا و ایناست دیگه طبیعی و پرس کنن که کلمه <تصفيق> بط از کلمه بودا گرفت بود برای اینکه در عربی خود میشه سنم این شباهتی به این کلمه نده و هر آدم بودایی برای اینکه باید یه مجسمه بودا تو خونه خودش داشته بوشی و در حضیقه یه چیزی شدید مرشدها پیرای خود ما هستن اینا میدونی که در تصفف میگن که صوفی که عقلش ندید که خدا رو در نظر گیره و دماس که پیر باید در نظرش کنید همه یه چیز پیره این است که بوداییم هم, هم مجسمه بودا رو باید داشته باشن در اون حال خلصه و نیایش که میرن خروب باید اون ورلیه بودا باشه و این رو فکر کردن که اینا اینو میفرستن و اینو خدا میدونن و این که ای سعدی میگه که رفتم تو هندستون و گفتم که این سنگ که کاری نمیکنه و این سنگ که موجودی نمیده و این خودشو نمیتونه تکون بده شما فکر میکردی که این رو میگن این خداست تو تفاهم متأسفانه مجسمه بودا هند به هر حال کلمه بود. حالا من به این که بودا چه چه بوده میکردن، چکار نمیکردن، اصلا کار ندارم. کلمه بود در فارسی، بودا، بودای کلمه بوداست و چون بوت رو می پرستن و تازیم تکریم میکنن، معشوق هم همین کار میکنن، جلوش تازیم تکریم میکنن، به معشوق هم گفتن بود. نغز گفتن بوت هر سا بچه با بفره هست مسلمون یا شیعه معتظاهلی هر دوش هم مسلمون و هم شیعه معتظاهلی عرض کنم که شعنش نیست شراب بندزید یا عرق بکشه حالا اخیرن گوید بلکره فراد بذارد بزن ولی قبلا چنین نبود این است که عرق انداختن و شراب انداختن و شراب فروختن و می‌ذاشتن به ورده خارج مصفبا عده کوفار فقط بس حضرت یس کوان هستم از کنم که حاجبوای اسلامی روی کتابش می‌نویسه که فرق ما مسلمانان با فرنگی‌ها اینه که فرنگی‌ها مشروبات الکلی رو حرام می‌دونن، کم می‌خورن. ما حلال، ببخشید، حلال می‌دونن و کم می‌کنن. ما حرام می‌دونیم زیاد می‌خورن. خلاص، در نتیجه می‌فروش در در در دستگاه اسلام به طور کلی یا زردشتی بوده که پیر مغان بهش میگن. یا ترسا وچه بود و ترسا بوده بود از این هرسا یا یهود فرزن کنم احوال شیخ و قاضی و شربل یهودشان کردم سوال، زبتم از دیگه می حالا، اینا که کسبشون مکارده، اگر بچهی داشتن، کسی داشتن، دختری داشتن، پسری داشتن که بر روی هم داشته، ریدی هم داشته به هر جهت در اینو حمله و فکرهای بعد هم نکنید برای که به هر حال و در هر صورت طرف چه پیر باشه چه جوان و اون یکی طرف هم چه زن باشه چه مرد دیدن صورت زیبا بهتر از دیدن صورت نازیبا بطعا برای مردای اینجا و زنهای اینجا اگه به جای بنده ی پیر ورد او سفید یه جوان رسیار برازنده ی خیلی خوشپزی نشه سه او لاقل چشمشون بیشتر چهستی شدیم این چهست نداری که لاقل من خودم هم این پیرو و هم نداره دختر و قسر نداره بنابراین اگر یه وقت یه آدمی از زیبایی یه مردی یا یه جفونی یا پسری مردی تحریف فکر نکنی که ایشون از طایف اسمال غربونه نه، زیبایی، زیبایی صده خواهد، قابل قابل تحقیره به همین دلیل است که حتی همین حالا و چندی پیش و سالیان ساله که در اماکن عمومی حتی قعب خونه سعی کردم چلوی اون شایدی که غذا میاره میذاره دلو مردم یا چایی میذاره دلو مستری این اگر بر روی نداره خیلی زیوانی است لآب خیلی زشت رو در بود آخون هم نباشه یعنی دلها سمت این مایه و داستان‌ها راجعه این هست در دوره صفه‌بیه ارز کنم که یه جوونی بوده، دوناقل جوون زیبایی بوده نام توفان این خانه داشت در عصر شعب بود و بسیار جوون زیبایی بوده و هم دلمه بسیار زیادی می‌رفتن فقط برای دیدار این بچه از جمله شخصی بوده نام مولانا مزفر کاشی که پاش، یه پاش شل بوده سایرم بوده زفر لنگ اینم هم دارم میدونده و خب کشمش به روی این جفون بوده ویدیو در خره عزبی بایش بروردری میکردی پیگم تا چشمش بیبینه میتونه بروردری کنه این بعد یه روایی ساخته در حد کنیم میگه در قهوه خوبان ببخش در قهوه طوفان توفان اسم اون بابد قهوه همینه قهوه در قهوه طوفان که سر خوبانه است صد عاشق پاشکسته نه که لنگ بوده در قهوه طوفان که سر خوبانه است صد عاشق پاشکسته سرگردانه آن رفت مزفر که سمندر بود ساماندار ما رو تو آتیش بسیار نمی کنیم آن رهد ما زدفت که ساماندار بودی مرقاوی شد که کار با توفا نیست <تصفيق> <تصفيق> بنابرایم اصلا تو قابل خونه محتضر باشن مشتری آدمی یه آدم یه جوان خوشفروروی، خوشفیکلی، خوشفیختی یا چایی در جلوشون تو میکده که مرافق بیشتر و اونجا این است که بطه ترسا بچه یه باد پرست این موغان و این گفرا یا مسیحی هایی که شعب کروشی می کردن بچه ها ما و این قاعده حتی در اواخر هم که ارامینه دکه داشتن ما در اوان جوانی چنان که افتاد و رای اونجا هست درمید <تصفيق> زدین بالاخره بودن از این کسانی که خب بریتشون هم می شد چرا؟ اگه میخواید خانم بگید من زیباستان من بعد 25 سال که بدر از ساله بودم بجرد راستان احس کنم که از دوستان میگفتش که یا آقای بود یا آقای بود و حضرت بوده و حالا من نگید این آخر و یه وقتی گوی اومده بوده اونجا من اداره تونه بود بودم میخواستم برم دیگه دانشگاه شده بودم داشتم میرفتم برم دانشگاه و پیدارو تونکیسی، یه دیده تونکیسی دیاجش اعلان کرد بود، میفهم چستم. پر ای اومده اوزنان من امتحان کردم برای فلا دکترش رو روزم نمیمتی اتران. بعد دیکتشون رو امتحان کن، تونکیسون امتحان کن، برای شون رو نمره بده دید، بازیه. بعد این به این دوست ما گفته بود که ای فلانی اون جاوین ها گفته بود، بله پلانی ها گفته که بله من ای یک دو سر گفت باره من بسیار بسیار جوان خوشقیافه بودن اون بعد گفتم خیلی بود که حالا با سرچه نستده در هر حال هر آسیا نو نوع خوانجان یک کرکه ریده و به هر جهت سوالی به هر جهت جوانی از کفک سعدین دردی هر کس، یه هر کس در هر شکلی دریخ خلعت دیبای احسن و تردین برافیم تنحب تراغ و دیبایی قباف خط مهمبر نشسته بر گل روم چنان که مشک به ماورد بر سمن ساد سر خروتنی افکن تیریم در تا پس از خروت و جوان درست دارن بس حالا به هر حال اون بط ترسابچه بازفرست دارن خوشگلم <تصفح> <تصفح> <تصفح> نه از گفتان گفت ترسا بچه با از یه نطفه دیگر هم که اینجا هست مسئله شادی خوردن شادی روی کسی خورد به صفحایی اینکه ندهید یه شادی روی کسی خورد اینه به سلامتی کسی بخور اصطلاحه حالا روی فارس و اما اینا هر کدوم یه مفاهیم و حسابهی داره صنعت ایرانی این بوده که شادیه کسی بخش بلیش هم اینه که عرق و شراب سلامتی اتمن نمیاره این مسلم این ناخوشی نیاره اتمن سلامتی نمیاره ولی شادی چرا؟ شادی چرا؟ مثل که <تصفيق> بشیار مرغزی اولین کسی چهرز شراب در در در زبان پاسیت داخته رز خدا از به ولی بله شاوی آفرید شاویی و فرزمی همه از رز جود کرد اون تو میگه که شاویی فرخت و خرزمی آن کس که رز فرود تاویی خرید و خرغنی آنکه هست که رز خرید بنابراین شادی و هست اما حالا من دو کلمه وجود سلامتی هم بگم که اونم بدونید که یک غنیمه انسانی بسیار بسیار قابل ملاحظهی داره این است که قبل از انقلاب کبیر فرانسه چنان که اطلاع دارین یه زندانی بود در فرانسه زندان عظیم اونا هم بستی. که متاسفانی در ایران از, از هشتا فت سال قطعیم پرجم کردن بستیل مردم ایران بستیل میشنه ولی کلمه بستیل این بستی در حقیقت فراموشخانه بود زندانی بودی که کسی رفتوش دیگه بیرون بیاد نبود دیگه جنازه رو باید میاردن بیرین با این حال که کسی که اون تو می رفتی که دیرون نبود گاهی دولت از کسانی که خیلی نگاه آمود از احوارشون رو برشت می خواهد که اینا اینا جیره نون و شراب بشن نیسته افناسوش شراب از آب ازیان از اون سرش و سر میز به جور نون شابه شراب بشن. آپ می‌موند، آب یه وز شراب و یه قرص نونی‌ها داشتن گیره هر کسی رو که دولت کرد اکی می‌خواسته بزنه به این وزری شرابش عیزا می‌زده یه قدری پس مون می‌کرده شب یارو می‌گفته و میخندیده و نشسته بود و با دوستان و به زن و بکو و اصلاً خیال مردن نداشتید بعد از صبح می‌رن که سید براس براس. بعد اینکه مکرر میشه این جریان، زنگانی احساس میکنن که این توتعظ و دولت ترکید درش نمیخواد، اینجا گرفتی میکردن که دیده از شروع شرابش دارو میزن و برشی میکنن. فکر کردن که خب این شطور در خونه همه هم خوابیده، کسی که ننوشته فردا نوبت حسن رو نوبت یعنی هر کسی هیش کدونشون از این خطر و از کنار نشستن کمیسیون کردن و با خودشون تصمیم گرفتن گفتن که ما همه شراب ها کنم بیدره دیویس نفر این مثلا قلب این دیویس شراب شراق میمسیم به هم کمره پالیس بعد دوباره میسیم داروی سمی که توی یکی از این بطیه هست میشه به دیریست دیگه این مورتل نیست این خوشنده میشه بعد میخوریم بعد از این که این کارو کردن شب اومد مستن به سلامتی یعنی این که ما اینو میخوریم و حال اینکه که میدونیم که فردا دیگه کسی از بردن شعبش نخواهد این شعار سلامتی که خیلی هم شده خیلی هم معروف شده در همه جای دنیا اینه ولی در پارسی چند که گفتم شادی هست و شادی خوردن و تو همه کتاب ها از داستان های عوامانم هست یا یه فرصت بود من شادی رفیقی تو میخوردم یعنی به شادی بله، بله، بله برانحال شادی خوردن اصطلاح در پارسی و همین شادی روی کسی خور میگه بطه تحسابه چه این فروش گفت شادی روی کسی خور که سفایه هستوها حافظ در گاخشین فاطحه خان فاطحه اسم سوله اول قرآنه بهش میگن سوزه‌ی کتاب. تلکتا های دیگر هم داره از جمله اسم‌هایی که خیلی مهمه و همین لازمه که شما بدونیم سب علمثانی سب عاب میں نے حافظ پورے فاتحہ سورت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یا تنابود و یا کناثنین اذن الصراط المستقیم صراط الذين انعمت علیہم غیر المعرض و علیہم بل الذال مسان سب نے حافظ اوئے محصانی میگن یعنی دو رفت برای اینکه گفتن که این سوره دو بار یه بار در مکه و یه بار در مدینه به رسول اکرم نازل شد به خلاف تمام سوره های که بیش از یه بار نازل نشده این که تا این سوره دو بار را بچه صد این صوره عبدیش با تحصول کتاب یعنی گوشایش کتاب الکتاب هم که میگن یعنی پر. این کتاب یعنی کتاب برای فاتحه سباب های بسیار بسیار زیاد خیلی زیاد این کتاب ها هست و همه فرقه ها و گروه هایی که به نه میباوستگی و اون سلم میدارن این فاتحه رو فراموش نمی کنن. از جمله در ایشان وقتی که در یه مجلسی از یه کسی همت می خواستن. یعنی می که من مثلا آزم سفر دودستی هست یا فلانجا می خواهم یا فلانکاری می خواهم با و همتی از خواهم می خواهم فاتحه می و اون وقت او دعا می کرده که اون محصول درده میگه با حافظ درگاه نشین فاتحه کن و زبان تو تمنا دعا داره. این مسائل رو که کتاب احوالات روش های دادن البته میتونی تا با خونسه یه به شاب بکن حالیه دارد باز چیزگان ناز و می دارد پسثر کشته خود می کشته خود می همچون باز چه توان کرد که اون و شفا دارد ماه پرشید نمایش ضبتت پده زون آفتابی که در پیش صحابی دارد حیوان اگر آن است که دارد لب روشن هست این که خضر بحر سرابی دارد بحره، بحره، سرابی دارد روشن هست این که خضر بحره، سرابی دارد کشمان کرد به هر گوشه روان سیل سریش تا سر شو را تازه به آبی دارد قمزه شوخ تو خونم به خشا می ریزد پرستش باد که این فکر ثوابی دارد کشم مصمول تو دارد دلم قصد جگر تو که مسته است مگر میل گفت مگر میلش مگر این طرفاته تو که مگر میل ثوابی که تو که مگر میل کبابی دارد جان بیمار مرا نیست ز تو روی سؤال ای خوشم خسته که از دور جوابی دارد که کند سوی دل خشته ی حافظ نظری چشم مستد که به هر گوشه خرابی دارد اولون مگر رو بگن توش که مستدست مگر میده که آف دارد مگر که در زبان فعلی فارسی قید استثناست بگن همه آمدن مگر حسین در قدیم مگر قید تردید هم بوده یعنی شاید بکار میده اینجا میمه توش که مستدست مگر میده که آف دارد یعنی شاید بکار تردید نظر آشغانه است. ظاهران است. ارفانی اینا این است. آن که از او تنبول کنایت زلطه صدیه است. این پرچی نبود. معمولا زلط او تنبول تشکیل است. آن که از او حالی تاب دارد با زادر شدگان نازو اتاب دارد. حالی نوی گرد سیاه رنگ، نمیدونم گفتم برای خون یعنیم انبر و یه مثلای مواد خشکوی دیگر رو با هم باکی میکنن از برای تیگرد سیاه رنگی میتابیدن در موی سرشون و آقایون در موی سر و ریششون استفاده میکردن تاب یکی که خوب اون تاب یکی دیگه او عنی تابیدن عنی داغ کردنه اصلا کلمه آفتاب یعنی آبتاب یعنی داغ کننده آب کلمه آفتابه هم که حالا ما به غلط این مسئله حالا که خیلی غلط کزنیم که اینجا صندت آفتابه خیلی در عبد از خودش اصلا آفتابه ها نه اسلامی نه هیچ چیزی خرابه نه، نه، راه، اصلا، آفتابه های دبا تبایی درسته هم آفتابه نیم آفتابه اون چیزی که امروز باشید، این پارک، لبه داره و اینا رو میداشتم جلو آتیش، که هم نیزون بوده همیشه، انرژی کنترل نمیشده، تا آب گرم داشته باشید و آفتابه یعنی آبتابه. بابا از تابیدن یعنی داغ کردن و یعنی وسیله داغ کردن ما خیلی دیدیم شما ندیدیم دیدیم کسانی که آتش کار می‌دان یعنی آهنگر و چیلنگر و دماسگر و مسگر و همین کسان اینکه پوره داشتن وقتی میخواستن پورهشون داق کنن و فسری میگوستن یعنی داق کسون بکن میکن این داغ کردن آفتاب تابه یعنی وسیله داغ کردن بنابراین ماهی تابه یعنی وسیله سرخ کردن ماهی آفتابه یعنی آبتابه ظرف داغ کردن آب اونی که ما حالا بشمیم اون آبریزه معنیش اینه برشیم که معرب شده ابریف در عربی هنوز ابریف معنی آفتابه هست. ولی ما چون اون رو گذاشتیم مثل چون کارچ یا کم مصرف میکردیم این بیشتر مصرف که اسم این رو گذاشتیم آفتابه اسم این آفتابه میگردیم اسم این آفتابه میگردیم برحال تاویدن من داب کرد من تاب دارم از او یعن به بنافشه تاب دارم که زلطه او زنددم گذشتیم ازش تو سیاه کمبابی که چه در دماغ دارم یعنی از دست به بنافشه اوقات هم تل خیلیم به بنافشه تاب دارم هم از همین من یک بالا رفتن حرارات تابیدن آفتاب از همین آن که اسطنبول او قالیه تابی دارد یعنی قالیه چون به بوی خوش اسطنبول لرفه او نمیرسند. دست و او اقامش درد آن که اسطنبول او قالیه تابی دارد باز با دل شدگان نازو اتابی دارد و همیشه با دل شده عاشق خلق خلق که ناز محشوق رو گفت میان عاشق و محشوق مال خاجست باز نیان عاشق و محشوب و فردشتی هایی یار ناز نمایت چون نیاز کنید؟ داره نزید آن که از او غالی تابی دارد باز باز برای تکرار، غیر تکراره. یعنی دوباره باز بادل شدگان ناز و اتاب دارد اتاب یعنی سرزنش از سر کشته خود میگذارد چون باز میکشه و به غمزه و میره به سرعت خدا بیا موصب اول واسم و حالت و چاره بسیار پامزی شعرهای حفاهی بسیار قشنگی داشت این شعری داشت که یه بیتش یادمه به یه مراسوب اینجا می گفتش که میزنی ما را به ابرو میکشی ما را به ناز با چه کارا می‌کشی و با چه چیزا می‌زنی حال، که اینجا از سر کشته خود میگذرد همچون بعد به سرعت از بره خود اعتناعی نمی‌کن چه توان کرد؟ چه عمر است و عمر در حوض نه عمره اگه عمر میشه یک دیگه نگاه داشت اگه یک ثانیه میشه عمرو نگاه کنشت این هم مثل عمره جان صناعی قضنبی یه مشروبی داشته ظاهرم قد پتا بوده مشروبش پتا قد خب باید اونوزا بعضی‌ها می‌پسند حالان باید نمی‌پسند نمی‌پسند به هر حال ساخته که ای آن که به حسن و به ماهی هرچند که کتا قدی دلخواهی شاخ گلی از پستی خود آرمدار عمر منی از برای من کتا از فر کشته خود میگذارد همچون باب چه توان کرد که اون دستو شفا میدارد ماه خرشی دو ماهش ماه خرشید و ماه یشید به پس پرده ی زل که در پیش اجابی دارد یعنی زل پردهیست در خرابای روحساره شد سحاب بیداشت، سحاب خیم شدیم، پیش شدیم شما نمیدیم، این آب حیفان اگران است که دارد، نکه گوشن هستیم خزر، بحره، خزر بحره. که خزر، بهره، سرابی دار آب حیوان مفصلت دلد اینجا هستیم را سراب، که خصه خز و وجه حال بهره مینام عرض کردن که این در قرآن آمده است و گفتن که ماهی که در صفیتی کفتاد تو آب ماهی شروع زنده شد و این فرمیده آب حیوان است خورد آب حیوان اگر است آن هست، که داره لب دوست یا ای آب که لب دوست داره روکن است این که به ذر بهره سراب می سراب سراب که میراش بشینگم و فرانسه. آب نیست اصلا فقط به چشم میاد که آب میل جلو با اینه جلوتر هست یا اگه آب اینه که در لب دوست هست اونه که خیل کن منون چه سر آب بوده اصلا آب نبوده گفت کلفت هم آمد پیشه برقال سر گذر گفت علی آقا این بودیم این،, این پنیر چیه دادی به خانوم اینا بیچاره ها گفتن این پنیرش خوب نیست چرا فنیر باید بدیم؟ از این, این نیگاه بس ای که از رو خوندن اینکه سابونه اینکه گفت وای خواهد به سرم پس اون اینکه من باشم اون صبح رفت آب اینه اون که کلا سرشت اوشن هست این که که زر بحره سرابی داره چشم من کرد به هر بوچه روان سیل سرش یکی هر طرف سیل سرش روان کرد من که تو یه جایی هستی داستهی سرده تو را تازه به آبتهی یعنی بلند تاقد بلنده تو رو به آبی تازه نگرد کی جان؟ سر به ترا تازه به آب این نصفه امرو پانده خودشان بخوناه صدقت این من به هم گوشه سرش تا سهی سر به ترا ترمه بله، یعنی آب تازه بینم چند تا اونو دارم سیطه پنجام دو نسخه، دو هشت نسخه. هش نسخه دو شش تازه تر بابیشون تازه به آبی تو خونم به خطا میریزد فرصتش با نصفه غزبینی هست یک از نارد قمزه شوخ تو خونم به می میریزد فرصتش باید که خوش فکر ثوابی دارد نصفه غزبینی در نصفه مرم خاندری هست فرصتش باید که این فکر ثوابی دارد فکر تو من از نمیم چشم مخمور تو یک نفتر اینجا بهتون بگم داله هیچ کس وقتون نگفته، در آن چود بسیارم ساده هست، فقط توجه نکردن، خیلی که نمیشو دیده درد خبار به معنی درد سر ناشی از مستی بنابراین آدم آدم هیچ گرفتار اون دردسر نمیشه نمیتونه بگه من خماره بعد بگه من خمار دارم یا باعث بگه من مخمورم حافظ هیچ وقت صفات خمار رو برای آدم به معنی کسل و کسی که از بی یا بی یا زهر مار دیده من نمیدونم چه ثالت داشته نمیگفت خمار چون حالا مرسوم شده آدمی که به هر دلیلی، به دلیل فقدان نعشجاد کسل میشه، میگنی این خماره موجب شده که بعض شغل آخذ که معنیشم بسیار مشکله به اشکالات دیگری هم برگوید عبوس زخ، به وکر خمار رنج شیند مرید طرقه دردیتشان ماله بعد شاید بکنید بچه خمار رو فکر صورت آدم خمار اصلا درست نیست، اصلا درست نیست. خمار هم دردشان، آدمی ذات چشم مخمور تو دارست دلم قصد جگر تو که مست مگر، مگر شاید مید کباب جان بیمار مرا نیست تو روی سوال رو همونی که حالا میدیم روزنی جرعت صفت که یجمیزا میگه که از براغ یک ای از لحل تو جان میدهد درک ده. یک رو میخواهد اظهار ایرج رو ندارد <تصفيق> جان بیمار من نیست نیسته تو روی سوال ای خوشان خسته که از خسته به معنی مجروفه زخمی خسته یعنی زخمی خسته به معنی امروز نیسته ایش خوشان خسته که از دو جواب بگاه کهی کند سوی دل خستهه یعنی مجروفه حافظ نظری، چشم مست دد که به هر چه خرابی می خراب رو با هم مست، با هم آبورده، خراب به هم معنی که حالا هم میدید که خراب و به همین معنی آدم که حالش در اثر مسجی زیاد تعادلش رو همین قردویش مرسن، خراب یاد روی تو خود را خراب خواهم دارد حالا حافظی، خناه احتقتین مستوار خواهم کرد من از اون نصفه مرم خاندره می کنم دیگه که خوندم اون شما لابد مستش هم اونم اشکالی باشه اشکالی نداره اون اشکالی نداره جان دیمار من نیست نیسته تو روی سوال اینه که بشه چشم از تو ایراد دکترون میگه هفتمی چاشن معمولا تو داره از دلام پسته چگهر یعنی از از دل میخواد بره سراغ جگر همه چیزو میخواد؟ دلو کامل گرفته میخواد جگرم داغون کنه اون وقت جگرتو معمولا کباب میکنن اینجوری اول که اومد تو کباب از دلم نیشه کباب کرد و دل کباب من آخا را گرفت ملاخوز رو بزن خب که اون مرد غصاوی بخونم با میخوای بخونم شاید <تصفيق> <تصفيق> کنم که بیت ما قبل آخر مرگ زیرک در نسخه خانداری مرغ زیرک نشود در چمنش نغم سراب نشود در چمنش نغم سراب از روی 5 تا نسخه مرمون خانداری نرکره دو نسخه اشون دوریست نزند در چمنش پرد سرابیه سه نسخه دیگه نزند نشود در چمنش نغم سرابیه بیتری راجب آن قبلا صحبت کردیم یه در اینجا هم آنه بازم آن بسیار داره این که آن بهترزه هست یار ما این دارد و آن نیست هم چند جای دیگر هم داره. ولی اونی که آن, آن که از همه معروف همین آن اینجا شاهدان نیست که موزی و میانی دارد من به آن باش که آن دارد واقعا گاهی آدم یه زنی، دختری مردی، چون که من فرقه می‌کنه بسیار زیبا می‌بینه که چی بخواه ایرادی گیره می‌بینه این هیچ ایرادی به این نیست ولی اون که باید در دل آدم جواب کنه و در دل آدم بنشینه بده، نمیشه در هر که کسی دیگری هست که هر کدوم از اجزای وجود شد تک تک به گیری می‌بینیم که تاریخی نداره ولی وقتی می‌بینیم توسیش بگیری این اون آن اون روزم گفتم دوی هم حافظ خودش تعریفی کرده لطیفه نهانی که عشق از او که نام آن نلوه خط زنگاری جمال شخص نه چشمست تو. ظرف و عارض و خواب هزار نکته در این کار باقی دل دارد میگه با مو داشتن و میان داشتن آدم شاهد نمیشه شاهد باید آن داشته باشه اون لطیفه نهانی رو شاید کلمه کریسما در زبنای فرنگی به این آن فارسی بکرد آن یعنی همی جاظبه نیست که موی یو میان دارد. بنده طلعت آن باش آن گارد شاهد یعنی محشوب یعنی آدم زیبان نه شاده. شیوه اون ای این نسخه رو من می‌خونم. نسخه من اون خانده‌جی. شیوه اروپری خوب و لطیف است ولی خیلی هم قشن کرد. خوبی, خوب خوبی آنست و لطافت که پلانی‌ه. وقتی اون طرح خوبی و لطافت این طرف هم خوب و لطیف خیلی بهتر است که. اون نسخایگه‌ی هست، شیوه اروپری گرچه لطیف است ولی وقتی بزنیم بالا بزنیم خوب و لطیف است که شم بگیم خوبی آ زیبای مروفری خوب و لطیف است ولی غیانت و لطافت که فلان داره. نور جامه حورا. حورا یعنی دختر چشم یا به چشمش، به سپیهیه چشمش، قلبه داشته جمعش میشه هور تلمه دیگری عینا اونم وازد کنون عینه و این چشمه، یعنی دختره کشتشم هر رو جمع این یکم میشه این هم را میشه هور ای ها امزامشون چه بعد ما در هور این دوتایی رو محفرت بکنیم بریم معنی موجود که از در ایران واسطان، در قبل اسلام قریب موجود و ملعون بودیم، موجود, موجود نشانه های احریمانی بودنش هست که میکرد هر کسی رو پریبینه دیوانه میشه پریزده و پریبینه کسی که دیوانه میشه و پریبند یعنی فاگی رو در که دعانویست که از گرفتاری پری آدمار نجات میده این نشانه اهریمنی بودن اینا اما در دوران بعض اصلاف از قدیمتنین ادوار این خاصیت پری در دلیل زیبایی خواداش فراموش شده حتی در شاهنامی که قدیم‌ترین اثر رفت بزرگ ارسای جماس اونجا می‌گه که سروش، یعنی پیغاموبر حضور به صورت پری پلنگین پوشی آمد یعنی پری اون حالات چیزش در پارسی در دوران استان حالات شومی و احریمنی شد در اینجا ده هموزی به شنبه گروش میشه شیده یا زور و خوب و لطیق هست ولی خوبی ها رسول فلانی داره چشمه ی چشم مرا چشمه ی چشم اضافه ی تشبیحیست اولا دوباره که چشمه هشه ی تشدیه. چشمه یعنی چیز زاینده مثل چشمه تشبیش کردن به چشم به اعتبار زایندگی چشم که عشق ازش می چشمه چشم مرا ای گل خندام گل وقتی باز میشه شه تشبیش می به خندیدن گل و معشوق رو هم که می خنده خنداش به باز شدن گل از هزید شدیده. چشمه چشم مرا ای گل خندام دریا اینو می به امید تو خوش آب روان خم ابروی تو در سمعت خیرندازی بستد از دست همان در که کست کمانی دارد این اونجا یه جوری دیگه هست برده مثلا قسطت هم همون این الان هم هنوز هست که وقتی کسی یه کاری رو میکنه بهتر از آدم مثلا فرض کن که کسی نمیدونم چمشیر زنه یا نمیدونم چند. هر کاری میگه من دیگه این کار رو گرشتم زنیم اینجا برابره از آقای ورزی، مرزا ورزی کمونچه می‌کنن الان استاد کمونچه هست نقل می‌کنن گفت که یه وقتی یه کسی ازش پرسید، که شما که ویولوم می‌زدید ویولوم خود می‌زدید چه شد که ربتی روی کمونچه و حالا حقیقت این است که یه روزی من در محفظ جماعتی از افتادان بودم همثال سبا و دیگران یعنی افتادان بودور و من هم بودم مثلا چهار پنج ساله، بیشتر و ویلون میزدم خوب یه آقای روزیسیانی آمد و یه بچه یا همراهش بود در عوضه ساله ای همراهش بود و آمد و بعد اونجا آقای روزیسیان که خودش در جه استادی داشت از استادا دیگه خواهش کرد که اگر اجازه میدن این بچه یه ذره ساز بزنه طبیعی بود که هیش وقت نمی‌گفتن رولو خوروه خور زنی به اصطلاح یعنی مقتدیره که معنی ندش بیارم شو اصطادایی مثل سبا و همچار رو ساز بزنی گفت گفتن به بچه بلند شد از سن در آقاده سادگی و زد و من دیدم هرچمان تا الان دارم او بهترش الان داره این بود که فکر کردم که دیگه من یونو گوشتم زنو رفتم سراغ کم و اون بچه اسمش پلیز یا حکیز این بستد از دست هرام کس که کمانی دارد نهیش اینه کمه عبروگ تو در صنعت تیر اندازی تیر مژگان است و تیر مجست و کمان ابرو که اینا معروفه، البته تیر مجم یه نوع تیر محسوسه که بهش میگن ناوک ناوک تیرای بوده شبیه جوالدیس پیر نازک آهنی بوده اگه میخواستم خیلی موثر باشی نه زهرالود میکرد اگر نه که برای صدمه های به کار میبردم یا تو جایی خیلی حساس مثل توی چشم میزدن اگر نه ناوک پیر توشنده نوش پیر نازک برحال مجگان رو به اون تشبیح میکنن و به هر جهت عبرو که به کمان تشبیح کنن مجشم دیرش هم موجود؟ همه اپوی تو در صحن هستی پیراندازی از دست به همان کس که کمان جا یوی خوبی که بر از تو که خورشید اونجا نه است که در دست اینا نید این میدیدم آقای شاملوز این که گرستوز به حافظ روکو که اون یادا کل اون یادا جای بحث بسیار زیاده و حالا من برسر اون نیستم اینجا مطرح نیستم مطرح نیست ولی یه گفته بود گفت که همه حافظان نوشتن که همین او خوبی که بارد از تو که پوشید جا نه سواری که در دست اینا نیدارد و آقایش عمرو میگه من یک جا دیدم در حافظه یعنی در کتابی که آقای همایون فرق راجع به حافظ نوشته این کتاب پنشیش یل هم هست، حافظ خراباتی و مرد انتقاد خیلی چدید واقع شد بود. خود شاملو هم بشت عویده ندر رو و آقای هم مقاله های خیلی مفصلی نوشته به ارحال کتاب، کتاب و عرضشی اصلا نیست بعد شاملو میخواد بگه که دلیل اینکه من میگم که باید همه ی خون. این از این یه جا من دیدم که نوشته گوی خوبی که برد از تو که پرشید آنجا نی سواری است که در دست انانی دارد و بدون هیچ استدلالی گفته که این درست دارد سواری البته درست میدون. بچه بچه ها در دوران کودکی، مثلا به بچه ها، یکی از تقریهاتی می که چوبی یارید که نهی می جای اسب و سوار میشن حتی اویه در روزگار صندی دامانشون هم می, می چون کودکان خور که دامان کنند اصف، دامان سوار گشته او می دانه کنند. دوره خود ما این چوب و دست گرفتن و تاختن هر درف وجود داشته. با این تفل نیسوار هست و اینجا بگیم خورشید در اینجا تفل سواره غلط نیست اما اینجا من خیال میکنم درست میشه. این دلیل که صحبت میدون چوزان بازیه صحبت گویه گوی بردن مال بازی چوزان بازی چوبان بازی بسیار خطرناکی، بسیار خطرناک که آدم های خیلی گنده گنده گاهی میافتند و میمیرند میمیرند از اصل میافتند گردنشون مفتند میشکند توی فراغتشون میشه و میمیرند خیلی بازی خطرناکیست سوال باید باشند چیش و با اون چوبان با اون چوبی بوی رو که کوره گردونای کوچیکی هست و سنگی نسبتاً با اون بزنن و بالاخر از اون دروازه بیرون کنن به تاق و با اصل و با سرعن خیلی بازی است که آزمدگی و وردگی بسیار ها شدید مفصلی میخواد و کار کاری که بچه رو واردش بشه نیست بنابراین هیچ سواری تو میدونه چوگان رو نمیشه گفت نه سواره تو راه نهی سوار توی میدان شدن اما این که بگیم سواریست که انانش در دستش نیست یعنی سواری که نمیتونه خوبش رو اداره کنه در, در مقابل در, در, در, در میدانی که گوی خوبی رو از تو میخوان ببرن نمیتونه خوبش رو اداره کنه این گروه بنابراین به نظر من یادم که اکثر نصف هست او یه خوبی که برد از طور که خورشید انجام نه سوار نیست که در دست ایمانی دارد یعنی خرشید هم در اونجا سوار مسلطی نیست سواری که اختیارشت از خوش باشه نیست در زن میدونید که این خورشید در اعتقادات ایران قدیم گردونه ایزد مهره ایزت مهر یکی از ایزتان بزرگ عریان قبل از زردوشت، اینا اینا و آسان قبل از زردوشت بوده و, و همین دلیل نفوذشو در دوران بعد از زردوشت هم حفظ کرده در عوستای فصل بسیار مفصلی تندیم سمته به نام مهریشت در ستایش مهره ایزدمه، ایزده اهد و پیمانه و مراقب این است که پیمان ها رو نگهت دارند و مردم پیمان شکنی نکنند و میگن هر روز سواه و گردونه از مشرق آسمان تا مغرب آسمان رو تیل میکنه و با نیزه های زرین که مراد عشقه ی آفتاب باشه پیمان شکنان رو به سزای خودشون میرسید و کار این ایزد به جای رسید که شعبه ای از این مذهب در, در اروفا میتراییست قبل از مسیح در حضی جنگ های ایران و روم در دوره عشقانی یه ادهی پرستش میترایی رویدن و پیش از شایر شدن مسیحیت در اونجا مذهب مهر و مهر تا به حدید رواج یافته بود که محاودش در ایسلند اون چمال آقایان تو من جمالی هم محاودش بگوشم و من در سال هفتاد که در انگلستان بودن در محله که انزینکون داشتم گوگ ورمی که اماعات چندین پراغهی بسازن زیر زمین برخوردم یکی از محاود محری و محاودهای محری هم باید حتما بود باشه و زیر زمین هر حال، اما در ایران یادم باشه ایران هیچ وقت مذهب نه مذهب رسمی نبود اگر گروهی بودن یا نبودن که بند خبر ندارن به هر حال فنان گروهی دربی میپنند که ما مهرمه و مهری هستیم حتی بعضی حرفایی هم میزنن که دوشنبه از همونی تحتیلشون از این حرفا دارن افتدایی ولی هیچ وقت در هیچ جایی ما هیچ خبری و هیچ سندی نداریم که در هیچ جایی از ایران میتراییست محفرستی مذهل و گفتن تمام وروف ها رو گرفته بود در حال حاضر که مسیحیت سرکوب کرد. این طولی کرد. یعنی با کشتار شدید مرپرستان مسیحیت کنید. تولد مسیح تولد وقتی مسیحیت شروع کرد به اینکه خوش پیدا اول دو خون و بسیاری از های دین مسیح جشنهایی میتراییستیه، جشنهایی میتراییست نکنید بعض اینکه دیرند که اینا رو به کولیت نمیتونند ایشاش از پایین ببرند اینا داخل آیل مسیح حالا این بحث زیاد معلوم، وقتی این بحث رو ندارم درست میتراییستان که نمیدیم اما خورشید چان که عرض کردم گربونه ی ایزت مهره و ایزتنه معروف است که سوار از این گردونه و اصانون رو تقیم میکنه و به همین دلیل خورشید و سواری و سوار بودن این حرفا از اون تصوراتی که از ایزتنه در اعتقاضات قدیم وجود داشته نسبت میزدن به حرف میزدن مسئله من که اینجا دارم اینه باقی مسئله تیلم مولد بوی گوی خوبی چه برات از تو گوی بردن بردن ندار بازی چوبانه و من یه خالت گوی خوبی که برد از تو که خرشی دانجا در پراور زیبایی تو سواری تو اینان در دست بشه نیست یعنی سوار قابلی نیست یعنی در پراوری تو پایداری ممتونه. دل نشان شد سخنم تا تو قبول داشته کنید بعض جه دل گفتن دلنشین دلنشین یعنی اون چه به دل آدم مینشینه دل نشان که محکوم دقیقتر و قشنگتری داره کمتر رایجه. دل نشان یعنی چیزی که دل آدم آروم میکنه. دل آدم می نشان. دل آدم آروم سعدی میگه که من این بسیار زیگاه را تو بکنم برهن. که واقعا یه جاهایی یه چیزایی که آدم اصلاً متحقیر میمونه. میگه مرا خود با تو چیزی در میان هست. یعنی من همون که محشوب بلاخره اینم. مرا خود با تو چیزی در میان هست وگر روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان خب یه وجودم آب شده از مهرت پشت این چی میخواد بگیرم؟ وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت و مهرتم جهان هم پر مور که از سرم سودا عشقت روت تا بر زمینم اصطفه هم هست اگر پیشم نشینی این بیته که مورد استشهابه میخواستم اگر پیشم نشینی دل نشانی یعنی دلو آروم میکنیم اگر پیشم نشینی دل نشان وگر قاعد شدید در دل نشان هست حالا یه چیز من از شما میگه که به گفتن راست نهاید چرحو خودتن به گفتن راست نهاید چرحو خودتن پشتره این چی میتونه بگی? باره که هرچی بخواد بگیم میگون مرد که ما یک تو نگفتی که تو نو گفتن راست نیگه چی میتونه بگی؟ اصلا چی میگه؟ چی میتونه بگی؟ شما بگی، به نصر بگی به شعران نمیخواد به گفتن راست ناید چره و غزمه ولیکن گفت ها ها تا زبان هست <تصفيق> بجز پیشت باز این از هم تلزم بجز پیشت نه سرنهاد هم تو <تصفيق> بحشوب ممکنه اگه من تو تو غلط میکنی <تصفيق> تو چی کاره اصلا چی میزنی من باید بگم خود تو چی؟ بجز پیشت نخواهان سرنهاده اگر بالی نباشد آسپان <تصفيق> اصلا این باور نکرده نیست این مرد از نظر اومد این سادی پیس آب جلال اصلا غیر قابل تصموره برا به نشان شد تا تو قبولش شد. آری آری ببینید با این نشان دفعه چقدر زیباست. دل نشین فعنی نداشت دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی آری آری سخن عشق نشانی داره در راه عشق نشد که هست یقین محرم رازیم بید ارفانیه کسی به تو نمسود نمیرسه خیلی خیلی جه ها همین مطلب رو ای گفته کس ندامس که منز بهترینش اینی که میفوند کسب ندامس که منزل جای مقدس کجا، اینقدر است که بونج جرس داد در راه عشق نشود کسب یقین محرم راست هر کسی بر حسد فن گمان می و خراباق نشینام ز کرامات ملا لاغ زدن به معنی دعوی بیهوده کردن دعوی که حقیقت نداره کردن و کرامت به معنی خبر آدازیست که نسبت میدونم به توفیه به همه نسبت میدم به همه آقایون علمه هم نسبت میدونم دو مرده که بیشتر نسبت میگن گاهی دو زنده هم نسبت میگن که آقا هم چی کردن؟ آقا هم چی کرد؟ زیارت که میکنیم این آقا مثل بنده بررانی هم برده. با خراب با... پیغمبر اکرم گفتا من یه بشر هستم مثل شما از ما نخواین من نمیدونم این مردم دنبال چی میپرد میگه بگو ای پیغمبر، بگو که من یه بشری هستم مثل شما فقط به من وحی بیشه یعنی من واسطه رسوندن پیغام الهی هستم، بر هم بسرد بعد گفتن آقا آمد، انگشت این گلیچت، ماه دونست بعد دستی از این از اون برد یکی از این هستم آقا یه مثل از این شما آقا از اون هستم یکشمت دیرون برد برد و نهاست کسی نهیده اون مردم تو خونهشون کنه <تصفح> <تصفح> حالا همه اینه چیه؟ شکافتن ما کنایه مجاز و کنایه از عمر شگفتنگیجه. و از قضیم در قبل از اینکه افترات ساعت و منشب قلق مرآی قرآن باشه در یکی از معلقات سبعه رای عرب بود، دنت ساعت و انشق قلقمت، ساعت نزدیک شد و ماه شکاست. یعنی کار خیلی عظیم به بود بگیم. واقعا اگر بخوازم یه جایی بگی که ماه شکاست، این که برای اولین بار در این تاریخ خلق زمین و آسمون یه بشری که پار روی ماه گذاشت، به داختشتن ما ذهن مردم عوام که اینا رو قبول نداره که میگه نه آقا انگشت رو باید که نمیشون درست بله پانیر بله بله بله بله این مسئله دیگه یه همچه مسئله خیلی شقدمی دید عرض کنم که بله سداجه میراج اون در قرآن هست این است که پاک هست خدایی که شوانه بنده خود را از مسجد الحرام به مسجد العقصال هر دو شعلا میدونی کجا؟ هم مسجد الحرام میدونی خود را هم مسجد العقصال از مسجد الحرام به مسجد افضا روید. سبحان الله زی اصواب عرب بگید لئی در من از الحرام الال مسجد الحرام. این کل آیه میراجد. فا بعد شروع کردن شیعه و سنی هرگید. به تفسیل هرچکان. قسطه‌هایی رو گفتن که از تصاده به روزه کاریون که سال ها بیشه در زبان فعلاوی هم وجود داشته من دوشم هنم در دست اردا بیراف نامه فعلاوی شهر هست همه اونجا که رسول اکرم اونشب دیدن سالها ها بیشه دوشون اردا هم رفته بوده دیده بوده و این نشون اینست که صدقه رسول بود با ایشون درست دیدن هم اونهایی بوده که صدقه بیش اونجا هم که به هم نمیخوره یه عربیسه ایران نیست که انقلاب بشه یا قوم بشه شهید فلاکی جوش پیدا کنه. حال موله کیا؟ ناچلا میذ که تصطبق بدهمون باگذ. یه مرکب خدا میذ ما امامان ماز در حفظ رسالت نماد بکنیم. برای بعد جهت اون چه در متن قران کریم هست این است که خوندن که شب بنده خودش رو شبانه از مسجد حرام بود دستش با خرابا اون وقت این کار میرسه تا به, به امسال بندن دیگه میرسه من میده تو مورید بده بالا نه میگه بله آقا نهید این آقا کس چه با شب شب شب شب با فرابا اون و کرامات ملا هر صوفن وقتی و هر نکته مکامی دارد مرگ زیرک راجون مرگ زیرک ایز که حفظ دادن خیلی در عدب فارسی این کلمه آمده مرگ زیره خب مرگ یعنی پرندی مطلق پرندی مرگ یعنی ماکیان نیست اینی که عدولاتی سر بشر هزاران هزارش در فروشگاه جسدش اینجا هست که ما بدیم بخریم اسمش ماکیان مرگ یعنی پرنده در عوستایی هم و یعنی پرنده سعدی میگه دوش مرگی به صبح میناد دورتگر در عصر ما چیزی بسیار قشنگی شود. بیگه ندانم زه مرغان چرا مرغ شب زهستی نشانی جزا باشیم ایشان میبینده ندانم ندانم زه چرا مرغ شب زهستی نشانی جزا باشیم بنا لد بوستان شبان درست. تو گویی که